بسم الله الرحمن الرحیم دوره مبانی فقه نظام کلاس استاد علی محمدی لا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفح> ربنا استننا انه خير من واسله والسلام على سيدنا الله عليه اللهم على محمد سر و آهانان به طراب مقدم حلق فدا قیدیم حضر بباره که صاحب عزبان صلیب خدمت سر و آهان سر و آهان آهان میکنم و ببنیمونم حیش چه میشه و میشه حضرت و میشه به طالت مگذره از تغییر روزخواهی میکنم یک کاری روزه بنده شما اومد روزخواهی میکنم نتونستم دوتر خلاصی که من قبل از اینکه که رو کنم کنم در حد چند دقیقه دوستان یه مقداری به من تقلمه برسونن که این چند روزه چی خوندن چی شنیدن چی گفتند فقه نظام ساز دیگه چی فقه نظام و فرهنگ نظام اقتصاد دیگه هفتکار جامع خب اشکال نداره تقلم به خود کنید به نمیشتای قبلی؟ روش ناسیم روش از دوستان میتونه شه فقه نظام یا فقه نظام سازی رو یه تعریفی ازش کنه؟ حالا ریا نمیشه اشکال نداره خودم بپرسم آقا یکی دافتاله بشه ها آقا شما میتونید شما نه شما, شما؟, شما؟ نه نه در موضوع فرقه نظام میتونید نه چی یاد گرفتید خیلی مهم به دیگه الان منم مثل بقیه بنام میگم میرم دیگه بفو آها آقا یه مرد داشت بگو بلند اما بیشتری از کار هم خب بهتر شد دیگه بلند الان بگو همه بشنو. در تن اون برای Oh. دیگه به تم بلند رو که که جامعه بگیه آسان بلندو حالا هم میخواد بگی بلندو آقا بقیه گوش کنید بقیه در اما نیستیم ممکن خودم من انتخاب کنم و اینکه به یا صدقه میشه که شامل <سؤال> همیه <سؤال> سیستم دیگه بشه. قرار اینکه قراره که یه زام سازی بخونید زام دیگه بشه هم در مورد منابع مهمه علاوه بر این که تعریف بشه مثل جامعه سازی بخونید و بحث‌های سیاسی نظر بده. یکی از نکات اصلی سیاست یعنی با نیاز یه نفر آخرم یکی یه توضیح بده بونم کسی 9 ساعت و نکته اضافی نداره؟ عوضو بالله همون از شیطان رو زدیم و خدمتون کنم که ببینید همه رفقا اون فهمون اشارتشون تقریبا تو از یکی دو تا نکته با هم مشترک بودن یکی دو تا نکته هم نکته خیلی مهم بیه اونم این بود که ما یک بار یک نگاه حد درقلیه به دین داریم یه بار یه نگاه حد اکثریتری داریم یعنی چی نگاه حد یعنی که قصد داریم که معارف دین رو در لایه‌های مختلف و در سطوح مختلف استنباد کنیم، فهم کنیم، استخراج کنیم و در زندگی فردی و اجتماعی خودمون محقق کنیم یه نکته دیگه بود فهماشه بعض از دوستان بود که این هی تیک میخورد و اولویت پیدا میکرد برجسته میشد مسئله این بود که نظام های اجتماعی باید مورد توجه قرار میگیرد پس یه بحث که مشترک بین همه دوستان بود این بود که یه نگاه فراختری یه نگاه گسترده تری به دین و معارف دین باید داشته باشیم. و اون بیاد در زندگیمون هم از ابعاد فردی و اجتماعیمون بیاده بشه و یه نکته دوم این که یه موضوع احتمالاً الان خیلی واسه ما اهمیت پیدا کرده به اسم ساختارهای اجتماعی که باید احکام دین رو و معارف دین رو در نسبت با ساختارهای دین استخراج کنیم و در اختیار خودمون و جامعه قرار بدیم. این دفعه تو نکته رو داشته باشید باهاش کار دارم. یعنی احتمال مثلا یه نیم ساعت دیگه که اواخر بنده است سعی می‌کنم که به این دوتا تا نکته برگردم و یه تکمیلی رو در نسبت با این دو تا نکته بزرگواران عرض کنم من قبلش میخوام یه زمینه تاریخی واسه دوستان بگم و یه داستان تعریف کنم ببینید که اصلاً چه اتفاقی افتاده که این سطح از فقاهت و دینشناسی مورد نیاز ما واقع شده از چرا ما مثلا دیویز سال پیش بزرگان ما فقهای ما به این فراست نیفتادند به این کوشش بذل جوت نکردند که بیایند و همین فقهی رو که ماست میشهدین فقه حکومتی فقه نظام فقه اجتماعی اینها رو استنباط کن. چه اتفاقی مگر افتاده؟ میگه الان الان ما چه تفاوتی با قبل ما کرده که این ضرورت این نیاز اینقدر برجسته شد ببینید مفقا ما از دیویز سال قبل وقتی نگاه میکنیم عمده معارفی که به ما رسیده در قالب یه ساختارهای علمی یعنی ما یه سری فیلسوفان داشتیم مثلا فرض کنید یه بحثی داریم تحت عنوان مثلا اصالت وجود یا حکمت متعالیه در فلسفه. خب در قرن ده قرن 19، جریان ما به یه دستاورد بسیار بسیار مهم رسیدن به اسم اصالت وجود و الانم تقریبا اون نگاه غالب به اندیشه فلسفی جهان تشیع این معناست. از حدود چه 100 پنجاه سال قبل و شاید این بیشتر صد مثلا شست سال قبل خب جریان اخباری ها در جریان در اندیشه اصولی و فقهی ما مسلط بودند. خب مرحوم وحید بهبهانی اومدن و شروع کردند با مجموعه مختلفی از اخباری گفته بود کردن و در نهایت غلبه پیدا کردند. تفکر امروزی ما در علم اصول مرحوم و متأثر از اندیشه های مرحوم وحید بهبهانی در فضای کلام در فضای فلسفه وقتی ما تو این معارفی که به دست ما رسیده از دیویس سال قبل نگاه میکنیم با همه عظمتی که داره یک سؤال انگار اصلا به ذهن بزرگان ما نرسیده که در موردش بحث کنیم اینگار اصلا نیازی نبود انگار اساسا این تردید و شک و پرسش نسبت به این مقوله برای بزرگان ما پیدا نشد اون چه پرسش مهمیه اون اینه که ما مین الف ما چه کسانی هستیم چه شده است که دور هم جمع شده ایم چگونه می توانیم رشد جمعی داشته باشیم و چه کسانی یا چی چیزهایی ما را تهدید می کند این ما رو چیچیزهایی تهدید می کند ما وقت نگاه به اندیشه بزرگانمون در فلسفه در فقر در تفسیر بکنیم با همه عظمت شعن با همه جلالت قدری که دارن یک پرسش مطرح نیست ممکنه یه فیلسوفی یه فیلی متکلمی یه مفسری در زیده یه آیهی در زیده یه مبحثی نکته استطرادن گفته باشد ولی اصل این توجه که ما چه کسانی هستیم چرا ما ماییم چرا ایران یک خوبیت جمعی دارد این چیزی که ما در ایران دوره هم جمع شده این چه چیزیست چه چه امری چه عاملی ما رو دوره هم نگه میدارد این پرسش پرسش علمی و نظری بزرگان ما قرار نگرفته چه در فلسفه چه در فقه چه در تفسیر چه در عرفان؟ چه در علوم دیگه اتفاق بزرگ در حدود دو سال گذشته باعث شده که پرسش از ما پرسش از نحوه رشد و موق و این ما پرسش از عوامل از محلال و انحلال این ما جدی و جدی و جدی بشه دو تا حادثه بسیار بزرگ اجتماعی که هنوزم که هنوزه، ما تحد ما تحد جاذبه اونیم این دوتا حادثه هنوز سایشون از سر ما کم نشده در درون این حادثه های اولین حادثه که حادثه نفی کننده حادثه نابود کننده وحشتناک در جامعه شیعی ایرانی بوده در دیوی سال گذشته. اون اتفاقیه که شروعش از شکست غیر مترقبه ما از روسیه در اوایل قرن 19 یعنی بین سالهای فکر میکنم مثلا 1803 تا 1800 و مثلا 24 25 26 نه حایدن 28 اتفاق افتاده در دو سری جنگ بین ما و روسیه تزاری در اوایل سده 1800 ما دو قسمت بزرگ از شمال خودمون رو از دست دادیم قسمت های همین ارمنستان آزربایجانی که الان داریم میگید بالای رود عرص رو از ایران روسیه به زور جدا کرده الان خیلی راحتیم خب جدا شده که جدا شده چون وقتی به تاریخ اون موقع اتفاق خیلی اتفاق عجیب غریبیه. یعنی یه ده کفار حمله کردن به جامعه مسلمینی به دارن تجاوز میکنن مردهاشون رو دارن میکشند زنهاشون رو دارن به اسارت میبرن بچهاشون رو دارن به بردگی میبرن و لحظه به لحظه مخابره داره میشه این خبر و پومپاش داره میشه این خبر در جامعه دینی خون آدمها داره به جوش میاد علم وسط کار اومدن مردم آماده جهادن دربار تمام با عباس میرزایف نایب و سلطنه فاطلی شاه اومده وسط میدون همه چیز ظاهرا آماده است برای پیروزی اما شکست بسیار سخته میخوریم در دو تا اهنامه یکی اهنامه گلستان یکی ترکمنچای که همتون دیگه مسلتی و بخش بخش‌های عظیمی از شمال ایران جدا میشه و یک سوال بسیار مهم در جامعه دینی شکل می‌گیره چرا ما عقب افتادیم این حادثه اینقدر حادثه بزرگی فکر نکنید فقط یه سری روشن فکر های زده فلان شده اونا وقتی میگفتند میگفتن ما عقب افتاده شدیم عقب افتاده شدیم نه سوال از عقب افتادگی چرا ما عقب افتاده شدیم که نتونستیم حتی از خاک خودمون دفاع کنیم یه سوال فراگیر حتی بین بزرگان و علما و زعمایشی است. چرا ما اینقدر عقب افتادیم ؟ ما ای که تو اوج تمدنی خودمون بودیم قبلا ما که در جنگه های در نهایت پیروز ماجرا بودیم ای که ما در نهایت جامعه اسلامی در جنگه های و بعد از اون تونست قسطنطنیه رو فتحی کنه حالا چه اتفاقی باستش افتاده روم شردی رو ما نابود کردیم حالا چی شده که جامعه اسلامی اینجوری داره شکست می چون میدونید این سوال فقط سآل شیعه نیست ما اینجا از روسیه شکست کردیم توی اون برای جامعه اسلامی احل تصنن اون مصر رو گرفت و فرایند از محلال امپراتوری عثمانی رو تسریع کرد چرا ما عقب افتادیم؟ حادثه خیلی حادثه عجیبیه شما اون دوران رو که نگاه میکنید تکاپوهای عجیب غریبی شکل گرفته که پاسخ این سوال بیاد بیرون حتی این فضا انقدر زیاده که شما فرد کنید امده کتابهایی هایی که شاید حدود 670 سال بعد در مشروطه نوشته شد اون زمینه اصلیش تم اصلیش پاسخ به همین سآله که چرا ما افتادیم؟ دعوایی که بعدن بین مرحوم شیخ وزرالله نوری رحمت الله علیه و مرحوم میرزای ناینی رحمت الله علیه در ماجرای مشروط شکل گرفت و علما عملا دو دسته شدند وقتی اون دوران به شما نگاه میکنید خواص این دو بزرگوار به یک سوال متفاوت داره میشه. یعنی نه سوال یه سواله. چرا ماغه افتاد؟ این سوال برای دربار قاجارم پیش اومده. عباس میرزا بارها و بارها از آدم‌های مختلف از جمله او یوبر نماینده فرانسه سوال داریم می‌پرسد که چه شده که شما اینقدر جلو افتادید؟ آفتاب جور دیگه به شما تابیده زمین شما ویژگی های خاص پیدا کرده ما قبلا به شما تفوق داشتیم چه اتفاقی افتاده الان ما عقب افتادی حتی شما وقتی میگاه میکنید در دهوایل دهه 20 یعنی 1320 کتابی مثل کتاب شزرات نمیشه در وسط بزرگ مردی مثل جناب آقای شاه آبادی رحمت الله علیش شروع کتاب شزرات با این سآله که علل ممرزه مسلمین چیست؟ چه چیزی باعث مریض شدن جامعه اسلامی شده؟ میدوند اولین چیزی هم که ایشون میگه میگه غرور به حقانیت میگه شیعیان چون فکر میکنن حقا خیلی تلاش نمیکنن سوال اصلا خیلی جدیه دو تا پاسخ جدی تو اون دوره داده شده نمیخوام وارد اون دو تا پاسخ بشن ولی میخوام ریشه بحث رو بگم که یه جریان رفتن سراغ که علت اصلی عقب افتادگی ما استعمار و همین جریان غربیه یه بدی رفتن سراغ این که گفتن نه ریشه اصلی مشکلات استبداد نظام پادشاهی و شاهنشاهی قاجاره یعنی دوگانه استبداد و استعمار هر کدوم یکی رو علمیت داد باعث یه انشقاق جدی اجتماعی در بدنه مسلمین و شیعیان به تبع علماشون شد این یک حادثه داشتم میگفتم دو دو حادثه وحشتناک اومده اولین حادثه اینه که این اون مابودن ما رو مورد تردید قرار بده اصلا قبلا بهش فکر نکرده بودیم اینقدر چون باش زندگی میکرده اصلا مورد تردید و تهدید واقع نشده بود ما از بعد از صخبیه که این مفهوم ملیت آغشته و متقومه به مفهوم مذهب در جامعه ایرانی شکل گرفت همیشه دست برتر رو داشتیم حتی ما از عثمانی ها هم دیگه پانه میخوردیم تونسته بودیم یک حکومت شیعی داشته باشیم که همهوردی بیکرد با جریان اهل تصنیم و امپراتوری عثمانی موازنه کاملا برقرار بود اما یه دفعه یک رقیب جدیدی به اسم اروپا اومده به اسم روسیه اومده که ما با روسیهش در تماس بودیم یه دفعه یه احساس از هم افتاده عجیب ما روسی ها رو اصلا آدم حساب نمیکردیم تا قبل از اون بیدیم ما تو جنگ ها مون عثمانی ها رو خیلی جدی می دونستیم دل دوزنه ها رو این جریان ها ازبک ها دونستیم چون رو هم چند اخی بار یه حمله ای کردن ما یه اینجوری می کردیم فرام می کردیم شهری رو دست خود قارت می کردن. ما اروپایی رو کلن حساب نمی کردیم و به روس ها می گفتیم رو, رو پایی های عضوه کرد اینقدر با نگاه تحقیرامز نگاهشون میکرد حالا همین آدمایی که ما اصلا حساب نمیکردیم تونسته بودن یه لطمه ای به ما بزنن لطمه ای که درد داشت سوالی رو ایجار میکرد که ما کی هستیم ما چرا هم افتادیم ما اون ماه ها اینگار یه حس جمعی ما رو به هم گره میزن حالا مورد تردید و تهدید واقع شده بود ما حادثه دوم موقعش موقف ایجاب ما تو این مدت خیلی جریان روشن فکری جریان روشن فکری اصلاً در اصلا شکل که یه دوستان در جریانن. اساسا اساس جریان روشن فکری در ایران عموما قاجارزاده هایی بودند شاهزاده های قا... قاجاری بودند که دربار اینها رو فرستاد بده اروپا یاد بگیرن قرب رو یه چیزای خوبش رو واسه ما بیارن چون اروپا تو دربار پیش کیاب غرب یه چیزای خوب داره یه چیزای بد داره ما چیزای خوبش رو میاریم چیزای بدش رو نمیاریم از جمله چیزای خوبش فنونش بود مثلا این دارال فنونی که امیر کبیر زد ایده اصلی ایده اصلی درباره قاجار بود که ما یه سری چیزهای خوب میاریم آمریکایی خودش آدم سالمیه ولی اصل ایده ایده تقلیلی یه دوستان چون اون دوران فکر میکردن که چیزهای خوب قربی رو فنناوریش رو میتونن بیاره ولی میتونن چیزهای دیگه شو جدا میکنیم ما فنون رو میخواییم ولی مثلا فلسفه سیاسی نمیخوایم فلسفه علومش رو نمیخوای در برو بوجو تلقیش این بود یه سری آدم گسیل میکرد بره اونجا کلا بیارن تو ضرب المثل چی میگفتن طرفو روشرسی می کلا بیاره چی میاره سر میاره اونا میرفتن یه مقدار مطالعه می‌کردن و می گفتن این چیزایی که شما میگید بده اونهاشم بد نیست ما همه‌شو میخوام برمیگاشن اینجا میگفتن نه ما همه شو میخوام بیاریم جریان روشن فكره ما تو خود دربار با پول خود دربار مریض متولد شد حالا اینا دارن به ما تعنه میزنن که ببینید دیدید چه گذر خوردید دیدید نتونستید دیدید فلان شد یه حادثه اتفاق افتاده یه حادثه اتفاق افتاده حدود ست سال بعد به اسم انقلاب اسلامی یه دفعه همه اونهایی که هی میگفتن آقا ما نمیتوانیم ما باید اصلین بشیم ما نمیتونیم این مسیر رو بریم این موقع تونسته یه کاری بکنه کارستان تا حالا مورد تهدید بود حالا انقدرش فشار اومده انقدر از این ور اومدش خواستن بکنن به خودش اومده یه تکونی خورده یه حرکت زده خونلی از تئوری‌های غرب در باب در باب‌های جامعه شناسی به هم خورده در مدیریت استراتژیک به هم خورده چون یه پدیده‌ای رو رقم زده این حرکت که تئوری‌ها نتونسته توضیحش کنه نتونسته توضیحش بده نتونسته پیش بینیش کنه یه مایی داریم دوستان در این 20 سال گذشته توسط یه جریانی و یه حوادثه در خطر قرار گرفته یه جاهای یه نمودهای بروز داره که دهن همه رو باز کرده همه رو همگوش به هم حالا بس فقه حکومتی چی میخواد بگه؟ فقه نظام چی میخواد بگه؟ میخواد بگه یه مسئله جدید به وجود اومده ما با یه مسئله جدید مواجهیم این مابودگی این با هم بودن ما ها فلسفه بیا جواب بده فیرسو سو من بگو بگو ما چگونه ما این چی ما رو ما کرده توصیف هستی شناسی شو بگو یه چیزهای در ما معرفت زمینیه ماها انگار همه به سمت اون یه علقه داریم وقتی یه حادثه اتفاق میفته انگار یه آشناییتی باهاش داریم یه چیه وجود عمومی ماست معرفت چناسی؟ بیا توضیحش بده اگه معرفت چناسی مگه این کار توضیح معرفت نیست خب بیا بگوین چیه که توی ما هست یه که توضیحش میده حکمت عملی قرار بود تدبیر منزل داشته باشیم سیاست مدن داشته باشیم هش بدن منی بسم الله بابا یه حرکتی در پنجه شهست سال گذشته اتفاق افتاده یه مردی به اسم خمینی بلند شده یه حرکتی رو انجام داده تو این همه تکسر یه جوری یه حرکت اجتماعی رو راه بری کرده که دوچار انشقاقه های شهست سال قبل خودش تو مشروطه نشده استبداد ستیز ها با استعمار ستیز ها مقابل هم قرار نگرفتن حضرت امام یه جور این معامله رو مدیریت کرده این فرایند رو رهبری کرده در جامعه دینی تعارض استعمار ستیزی و استبداد ستیزی اتفاق نیفتاده 50 شخص سال قبلش اتفاق افتاده بود شعار علما که ادالت خانه بود پای دیگ پلوی سفارت انگلستان تبدیل شد به مشروط خواهی یک کسی بلند شده اینو مدیریت کرده جامعه شناسی حکمت نظری حکمت عملی تفسیر ارفان که توضیحش بده خیلی میفهمید بی توضیح بدید فقیه اسلام رو میفهمی یه مسئله پیش اومده بیا توضیح بده قواعدش رو بگو احکامش رو بگو تکالیفش رو بگو نحوه روابطش رو بگو بگو من بخوام اینو بر اساس دینی میخوام دینی تر کنم چه کار کنم دو تا سلبویجه هم ازش دیدیم یه بار شکست عجیب خوردیم یه باره قرن رو رقم زدیم تو انقلاب اسلام فقیه نمیتونه بگی من با این کار نکنم هر که بگی من با این کار نکنم کار ندارم فردن زمان خودش نیست تعبیر مرحوم شاید متعریب رحمت الله علی یه تعبیر داره از سوز دل میگه میگه ما در این تحولی که داره اون اتفاق میفته با دو دسته آدم مواجهیم با دو دسته آدم هایی که یه عده جامدن یه عده جاهل، یه عده جامدن که نمیخوان به این حادثه فکر کنن تکرار و مکررات میکنن. با یه دسته مواجهیم که هر تغییری که میان دیگه راه اگر اگه بخوام تغییر کنیم باید غربی بشیم بگیم با دو دست آدم مواجهیم جامدها جاهلها و میگه اینا هر دوتا یه جان آبش خوره شد چرا چون جامدها متحجرها میگوین هر چیزی که قدیمیست اسلامیست و چیزهای جدید و تحول اصلا اسلامیست جاهلها میگن هر چیز جدیدی قربیست و هم باید غربی بشین که متحده ریشه جامت ها و جاهل‌ها ها به یه چیز برمیگرد و اون حبس کردن دین در گذشته است جامت ها یه جور، جاهل یه جور دیگه جامت ها دین همان است که در گذشته بوده و خوب است جاهل ها دین همان است که در گذشته بوده و بد است تارحال که شاه متحده میگه دین یه امور حقیقی است نسبت به جدید و قدیم آنچه که خوب است آنچه که حق است رو می‌پذیرند آنچه که حق است رو نمی‌پذیرند و لحظه به لحظه به نحو بهدر شدن و به سوی بهینه شدن باید حرکت کنه من این حادثه نیاز به تأمل داره ما یه یوحوییت جمعی داریم یه جامعه دینی داریم کارهای بزرگی کرده دوستان اگر شما مرمان طلقه های دین نخواید متوجه این مسئله بشید که انقلاب اسلامی اتفاق افتاده است که مسئله های جهانی رو جابجا کرده فقیهی خواهید شد جامعه و اگر های خودتون و اون حقایق رو فهم نکنید و فقط به دام فضای تحولات و تغییرات برید فقیهی خواهید شد جاهل شما تعبیر حضرت امام رحمت الله علیه رو که نگاه میکنید ایشون یه تعبیر داره به اسم اسلام ناب محمدی نام صلی یه تعبیری داره مقابل ایشون مقابل این تعبیر که تقریبا مهمترین کلید واژه اندیشه سیاسی ایشون مهمترین کلید واژه اندیشه سیاسی حضرت امام در مقابل اسلام ناب اسلام آمریکایی است وقتی حضرت امام میخواد توضیح بده اسلام آمریکایی میگه اسلام آمریکایی اسلام متحجرها و اسلام منفعلهاست دو دسته دو مصداق داره این اسلام آمریکایی کسانی که متحجرند نمیخواهند این تحول رو این ارتقاء مقیاس دینداری رو از عرصه فردی به عرصه اجتماعی نمیخوان این رو فهم کنن نمیخوان در مستوی این حادثه بزرگ بیستن اصرار بر ندیدن دارن یا دا شاید چشم دیدن ندارن در مقابلش یه کسانی هم که از اتفاقی در غرب افتاده منفعل و فکر میکنن هر اتفاق خوبی فقط اونجا اتفاق می افته چشم بسته نمی بینند یا شاید نمیخواهند ببینند که آنچه که در آن سو به اسم تکامل بشریت تحول بشریت اتفاق افتاده به چه قهقرایی داریم با چه سرعتی ما در میانه این جریان تهجر و انفالین دوستان ما در میانه این جریان جهالت و جمادتی خیلی کار سختی داره خیلی کار سختی داره اگر میخواید به درد الان بخورید از الان باید فهم کنید اتفاق به اسم انقلاب اسلامی رو باید با تاریخ دیویست دیویست و ساله گذشته خود ما خوب کنید با پیروزی های سال گذشته باید بخندید و با شکست ها باید گریه کنید اگر سیر و سلوک دو سال گذشته نداشته باشید اگر این دیویست سال رو مثل یک کسی که خاندان خودش رو تحولات و فراز و فرود زندگی پدر و مادر خودش رو چشیده لمس کرده با فراز و فرودش هم غم پیدا کرده این حادثم نداشته باشید ولی اینکه صد تا بحث بگن حفظ میکنید حفظ میکنید می نویسید می ولی نمیفهمد. فقه نظام فقه حکومتی فقه اجتماعی کلید واجه که اگر ما طلبه میخوایم الان رسالت خودمون رو در نسبت با سربازی حضرت حجت، عجل الله تعالی فرجه و شریف انجام بدیم محمل سربازی محمل سربازی و محمل سروازه ماست من این رو خیلی سریح ارزو کنم خیلی سریح ارزو هست سریح ارزو کنم ما شاید چندی دوستان؟ چند؟ خامید، اسوالanak، بفرما. من سال 78 اومدم حوزه. این اصطلاح که درس بخونید، درس بخونید، خدمت به حضرت حجت است بدون بیان خصوصیاتی که چه درسی، برای چه موضوعی در نسبت به چه آرمانی اگر معلوم نشود یک جمله مهمل رحزن و بعضا خطره جهنمی. شادیدار من فرزند یک حادثه من مؤمن به انقلاب اسلامی هم. و اتفاق بزرگی با انقلاب اسلام افتاد. ندیدنش، نفهمیدنش، بی‌اعتنا بودنه به او، بی‌اعتنا به معجزه حضرت حجت الله تعالی شریف در این دوران ماست. اخلاقی ترین فعلی رو که تصور میکنید ترین فعلی رو که تصور میکنید اون فعلیه که شما رو در نسبت با انقلاب اسلامی زنده نگه میداره. هیچ باقیات و سالهاتی هیچ باقیات و سالهاتی در حال حاضر مهمتر از مشارکت در ساخت تمدن نوین اسلامی به عنوان زمین ساز ازترار جهانی به حضرت حجد از الله و زمین سازی برای ظهور حضرت نیست از این سراحت نباید به ترسیم با بعضی وقتا شوخی میکنه با مجرم حتما هجت داشتن بعضی از بزرگان ما ولی من واقعا نمیفهمم. اون بزرگواری که شایردان امام بود درس خارج میگفت وقتی به سه خوردار می رسید پیروزی رزمندگان اسلام در فت شهر رو تبریک می و بعد می خب بسم الله الرحمن الرحیم درس دیروز ما کجا بود ادامه درس دوران ستمشاهی خودش رو با همون روال ادامه میداد این بی تردید فقیه انقلاب اسلامی نیست بی تردید فقیه انقلاب اسلامی است من اگر بخوام بگم فقیه انقلاب اسلامی که بگم شهید صد رحمت الله علیه که با اینکه در نجف شش ماه درسشو تعطیل می کنه تا بتونه چند رساله برای جمهوری اسلامی بنویسه یکی از معدود بزرگانی از علموهشی است که پیش نویسه قانون اساسی می نویسه برای جمهوری اسلامی شش ماه یه فقیه درسشو تعطیل کنه انشالله یکی میدرسته تون رفت بالاتر دمخور خور با بزرگانی که در خارج داره میفهمید چقدر مجاهده میخواد یه انتحار علمی در حوزه های علمی است تا میکنه تا بتونه الاسلام یا خدایان حیات بنویسه بین تردید بین شهید سر و بزرگانی که این کارو نکردن فاصله است استراحت در این فاصله نترسید دوستان کسی حتما حجتی داره بودهایی بزرگی رو نمیتونید ملامت کنید من واقعا نصده بزرگان بینی و بیدالله واقعا احساس می‌کنم و حق ملاوت نداریم حتما طرف در یه سطحی برش احتجاد شده ولی در بیان این که فاصله هست بین این آدم و حضرت امام بین این آدم و شهید صدر بین این آدم و شاگردانی از حضرت امام که پای کار انقلاب اسلامی بایست دادن حتما این حرف باید راسخ و وگرنه بعضی وقتا معروف ها تبدیل به منکر میشه. منکر ها تبدیل معروف میشه. وگر اهمیت چنین امر معروفی، پاسداشت چنین معروفی، نحی از چنین منکری و کمتر از بد هجابی و به هجابیه. که یه جمعی یه جریانی به بزرگترین حادثه اون جریان در قرمه های متمادی بی توجهی علمی کنن اون رو توریزه نکنن که ما مجبور بشیم در ساخت حقوقی در ساخت سیاستی و راهبردی و برنامه یه چنین انقلاب بزرگی دستمونو جلوی یک جریان های رقیب خودمون جریان های معاند خودمون جریانهایی هایی که نسبتی با ما ندارن دراز کنیم، تا بگیم آقا میشه به ما بگید مدل خوکفرانی چه جوریه، میشه بگید به ما مردم ایستازی بعد چه جوری اتفاق بیفته، میشه یه لطفی کنید به ما بگید که چه جوری میشه مثلا منابع طبیعی رو تقسیم کنیم، میشه به بگید با جنگل جنگل‌ها باید چه کار کنیم، ما آدم رو چه جوری تقسیم کنیم، چه جوری مالیات بگیریم. گمرک رو چجوری کنترل کنیم کاشاق رو باید چه اتفاقی رو رقم بده چرا آدم ها معتادن ما معتادا چه کار کنیم چرا اینقدر دران طلاق میگیرن طلاق ها رو چرا ازدواج نمی کنن بچه ها چرا بچه نمی یارن خودمون رو بخواهم شا... پاسه چه کنم چه کنم دست بگیریم یکی ایسی برسه به ما بگی باید چه کار بکنیم من معارف خود ما خاک چه دردو میخوری دوستان قلمان یه تلویه کچه گرز میکنم تو این چند سال گذاشته مامن موضوعی و این که من دست گذاشتم با دوستان روی اون من دیدیم کار نشده در نسبت به انقلاب اسلامی به یکی از دوستان میگفتم، میگفتم من فکر نمی در طول تاریخ ایران نسل جوان و میانسالی مثل ما به نسل به اندازه ما آزادی داشتیم چون همه میدان‌هایی که می‌خواد ورود پیدا کنید کار علمی کنید بخش زیادیش بکره. من اینکه در سنت ما ریشه ای نداره من اصلاً اینو قبول ندارم کسی که سنت خودش رو فهم نکنه، رسوخ نداشته باشه، وسوخ نداشته باشه رقوف نداشته باشه به سنت خودش بیبوته هست پوچه سر از نهلیست در میاره ولی کسی که فکر کنه همه چیز همونجاست با فقط تکرار و کردارم میتونه مشکل ما کنه ما به شدت نیازه به بازافرینی داریم ما به شدت نیازه به بازارایی معارفت داریم در نسبت با انقلاب اسلام کمرهای خودتون رو صفت دو دوستان راه پرکیچ و خمیه راه بسیار بسیار سختیه این رو شفاف باز میگن دوستان تمام آنچه که در علوم گذشته ما و معارف ما فقه ما با یه سابقه هزار و اندیس سال که حالا ورود بدا میکنید من فکر نمیکنم هیچ علمی در اندازه علم فقه و اصول نخصوصا فقاهت ذخامت داشته باشه اینقدر ای که من از علوم مختلف دیدم بی سابق است این سطح از انباش و در همتنی مثلش مثلشو ندیدم نزدیکی به اونم ندیدم نه در فلسفه قرم نه در فضای حتی معارف عقلی حتی معارف حدیثی یک پیچی دیگه داره و بزرگانی از نمابقه تعبیری عزت آقا داره میگه کسانی که در فقهات تونستن کاری رو جلو ببرن هر کدوم از اینا نابقه هایی بودن که وارد هر علمی دیگه ایگه میشنن اون علم رو یک انقلاب درش ایجاد میکردن این همه انباشت اتفاق افتاده پس دوستان به نسبت اون چیزی که باید اتفاق بیفته یک ثبوم هم بسید خیلی کمرهاتون رو صرف ببندید تس فنون موجود و علوم موجود رو جزء حد اقل های خودتون ببرید انگیزه پیدا کنید که این سطح از فهم یک سوم کل کاسه شما رو پر میکن. و وقتی که مسلط شدید وقوف پیدا کردید تازه نوبت ابداع و اختراع شماست نوبت نوآوری و آزاداندیشی شماست و اجتهادات شماست خیلی کار سختی پیش رو داریم و کار بزرگ و البته به تعبیر از جساقا پر به جنس. من تقریبا نیم ساعتم تمومه به اون یه قولی که اول دادم عمل کنم و ارزم رو تمام دوستان دو تا نکته میگفتن یایتون هست که چی گفتید اولش خودتون یتون هست اون دو تا ای که من جمع بندی کردم چی بود؟ چه؟ آها یک, هم. یک دوستان توجه کردن که یکی این که نگاه حد اکثریتری به داشت و برای همه ارساهای فردی اجتماعی محارف دین رو استنباد کرد نکته دوم اینکه توجه مسئله نظامات اجتماعی بسیار بسیار ضروری این دوتا خیلی چیز مهمیه فقط یه نکته بش اضافه میکنم. حضرت امام و حضرت آقا فرمایششون در بحث فقه حکومتی و فقه بایسته یه پله دیگه هم و اون مسئله فقه ناظر به اداره است اداره یعنی چی؟ یعنی یه پدیده رو از یه نقطه آ به نقطه برساندن یه پدیده رو سرپرستی کردن یک پدیده رو کردن؟ سرپرستی و مدیریت کردن شما کلیدوازه های عزت امام و رو اداره اگر سرش کنید بسیار زیادون حضرت آقام هم حضرت امام وقتی میخواد بگه که اجتهاد مستلح در حوزههای های علمی کافی نیست ابارتشو ببینید بگه چه کسی است؟ یا اینجوری بگم هران کسی که وارد اجرا شده است میداند اشتهاد مستلح حوزه های علمیه کافی نیست چه کسی میداند هر کسی بارد اجرا شده باشد اونم که میگه کافی ملوم بارد اجرا نشد یا اونجا حضرت امام در یه نامه بسیار مهمی تحت عنوان منشور برادری که به آقای محمد علی انصاری نوشته داداش همین آقای حمید انصاری. تو تو بو بوهای سال 66 که حالا روحانیت روحانی و مبارز دارن انشعاب میزنن دارن الان موجودیت میکنن سر قضیه مجلس سوم یه تیه انح داره اتفاق میفته دعوای شورای نگهبان سر قانون کار با مجلس دولت بالا گرفته همه اینو به علو شو آقای محمد علی انصاری نامه مینویسه به امام از این همه اختلاف ها گله میکنه امام که اون نامه منصور برادری میگه که من شما رو آدم خوبی میدونم یکم احساساتی میدونم مثل خیلی کسای دیگه ولی چون شما رو دوست دارم چند خطی مینی خیلی حوصله ندارم سرم کنم و خلاصش کنم امام میگونه بعد, می بعد شروع میکنه یه مراتبی رو چند تا نکته گفتن اصل موضوع اینه که ما اشتهاد رو که در جامعه اسلامی نمیتونیم تعلیل کنیم و چقدر ما نیاز به اشتهاد داریم امام موضوع حدود 20 تا 22 تا موضوع میگه که میگه همین الان در جامعه اسلامی ما نیاز به این اشتهادها و پاسخ این نیازها داریم از جمله بسید گمرک و بسید همین مثالهایی که من زدم خیلیش از همون جا بود بهتون مراجعه کنید بعد امام, بعد امام میگه که باب اشتهادو که نمیشه بست لازمه اشتهاد هم اختلافه نمیشه بگه آقا قطفل اختلاف میشه اشتهاد نکنید بعد ادامه میده بلاکر آنچه که مهمه است شناخت درست جامعه و حکومت است که وحدت رویه و عمل ضروری است و بدون آن برنامه ریزیه برای مستضعفان امکان ناپذیر است یعنی یه شناخت درست حکومت و جامعه میخواهیم این وحدت رویه در اشتحاد درست میکنه بعد اما ادامه میده میگه کسی که مسلحت مسلمین را تشخیص ندهد و حتی افراد صالح و ناشایست را از افراد صالح نتواند تمیز بدهد این فرد دقت کنید ولو اینکه که اعلم در علوم محبود حوزوی باشد در امور اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمیتواند زمان امور را به دست بگیرد همین امام تو منشور روحانیت که واسه من شما نوشته حتما انشاءالله ده بار بیس بار سه بار تا حالا خوندیدش حتما خوندید نگه میشه نخونده باشید توی اونجا فرازهای مهم میداره از جمعه ایش اینه که مشتهد واقعی کسی است که به تواند یک جامعه اسلامی و حتی یک جامعه غیر اسلامی را اداره کند جمله مهم امام که دیگه همه حتما چند بار صد بار, صد بار, صد بار که خوندید حتما اینم خوندید دیگه فقه تئوری اداره انسان از گهواره تا گور است اداره غیر استقاد اسلم بات نظام ها. حتی غیر از گستردگی شما باید گردگی رو سباد کنید حتما. حتما باید نظامات اسلامی رو اسلم باد کنید. ولی نکته مهم اینه که تق اون نظامات اسلامی در متن جامعه در متن جامعه یه فرایند تدریجی و زمان ب مشتهد واقعی کسی که تواند بر فراز این فرایند بیست و این فرایند تدریجی تحقق نظامات اسلامی در جامعه اسلامی را مدیریت دینی کنن شما حتما استنبات نظامات میخواهید، حتما گستردگی در استنباتات میخواهید ولی حواستون باشه خواستگاه نهاییتون ایستادن بر قلعه است که بتماند فرایند تدریجی اسلامی شدن را در جامعه توریزه و نظارت و محقق کند. ببخشید من وقتم تمام خود خواهی میکنم بازم از تأخیر میدوارم که انشالله در حدود 20 سال آینده انشالله از جمع شما بزرگان تعداد قابل توجهی از سربازان واقعی امام زمان عج در وداع با فرج الله شاهد باشید. ابراهیم علیه و حضرت سلام الله علیه. <تصفيق>